بسم الله الرحمن الرحیم بعض خصائص الفعل ثلاثی بعضی از ویجگی و خسلات های های فعل ثلاثی رو در این درس بیان میکنند نکته بسیار واقعا مهم و خوبی هستند امثله رو در چار گروه آورده وردست قبا یقبی مبا یمبی ناقص هست قضا و مبا و از مصدر یا مزارش مشخص میشه که این ناقص یایی هست قضا یقضی از یقضی دانسته میشه که این قبا آخرش علفه ولی این الف در اصل یا بوده دعا یدعو وابی هست دنا واوی وابی هست قبا قضا یقضی مبا یمضی ناقص یایی بودند و دعا یدعو دنا یدرو ناقص سار یسیرو با یبیعو این اجواف یایی ای هستن اصلشون اصل الف در این دوتا اجواف یا بوده از همیشه برای این تشخیصش بدیم از مستر و مزاره این, و این حرف و تشخیص بدیم که اصلش چی بوده این الیف منقلبه جار یجورو ساغ یسوغو هم که الف اصلش باو بوده امسلی گروه سوم مده ی مدو شقه ی شقه مده ی مدو بر وزن فعلا ی فعولو هست نصر ی انصرو شقه ی شقه همچنین مده با شقه متعدی هستند. عفا ی عفو خفا دوتا بر وزن فعل يفعلو هستند ضرب يضربو ولی اینا لازم هستند چون غالبا لازم بر این وزن مياد فعل يفعلو زرب يضربو امثل گروه ارم وعد يعدو وجد يجدو وصف يصفو که مثال هست و مثال واوی غالباً بر وزن زربه یزریبو فعلایف علومیات اینها امثله بودند که خودیم حالا بیایم روی قاعده. قاعده چهارم کتاب نحو الواضح القائده الماضی المفتوح الثانی ماضی که دومین حرفش فتحه داشته باشه منظور چی است؟ منظور یه نیست که برواز ماضیش برواز فعله باشه ماضی براز چه باشه فعله الماضی المفتوخ ثانی ماضی که دومیش فرطه داشته باشه خب ماضی ماضی سلاسی مجرد خودش سه حرف هست حرف اول و دوم که میشه در معلوم ثابتن دومی یا بر وزن فعله هست یا بر وزن فعيله یا بر وزن فعوله ولی این درس ما دقیق داشته باشید چی بیگه؟ الماضی المفتوخستاری ماضی که دوبیش فتحه داشته باشه ویژگی های این رو داره میگه نقطه های زیبایی رو در این مورد یاد میده ماضیه که دوبی حرفش فتحه داشته باشه یا به عبارتی دیگه ماضی که بر وزن فعله باشد ان امکان ناقصا یایین اگر ناقص یایی بود مانند قضاء و مضاه در امثلی گروه اول او اجوفا یایین یا, یا اجوف یایی بود مانند ساره و باعه در امثلی گروه دوم فهو من باب ضربه، پس از باب زربه یز هست مزارش براز یفعیلو است، مانند قضا یقلی مضا یمدی ساره يسير باع یبیعه با و كان مضاعفا اگر مضاعف بود اگر چی بود؟ این ماضی ما مضاعف بود فا امکان اگر متعدی بود فهو من باب نصره کثیرن بیشتر که بر باب نصره میاید مانند مده یا مده نصر ينصر ما دام يمد شق يشق نصر ينصر وان كان لازم ان اگر این لازم بود مانند افع و خفه فهو من بضرا بالغالبن غالبا بر باب ضرب می آید افع يا افو ضرب يضرب خف يا خف ضرب يضرب قرن فعل و امکانم مثالا واوی اگر مثال واوی بود مانند وعده وجد وصفه فهو به باب درابه غالبا غالبا بر باب زرابه میاد که این چنین است وعده یعیدو زرابه یزریبو وجد یجیدو زرابه یزریبو وصفه یصفه که واو حسد شده است و جلوتر توضیح میدهد پس در این قائده چارو بعد یک سری های زیبایی رو بیان کرد